فصل دوازده هم. چند روش برای به خاطر سپردن برای کمک به حافظه، سیستم بسیاری وجود دارند که آنها را با نام روش های به خاطر سپاری می شنسیم. زمانی از این روش زیاد استفاده می شود. خصوصاً خصوصا به دنبال تحقیقات آب موانو که باز هم در مورد وی صحبت خواهیم کرد استفاده از این روش ها برای به خاطر سپاری و به یاد آوردن تواریخ رابطه های خاصی از قبیل محیط با قطر، داده های نجومی، غلزت ها، اوزان اتمی، ارتفاعات کوه‌های معروف، تعداد جمعیت، حفظ توقع بندی ها، در علومی نظیر جانورشناسی، شناسی، آناتومی، گیاه شناسی و زمین شناسی که حافظه در آنها نقش مهمی بر عهده دارد بیشتر مطرح شد. امروزه این روش ها از طریق تبلیغات با قیمت بالایی به مردم ارائه شده و با عاوویی نظیر حافظه ای باور نکردنی حافظه ای عالی و غیره مورد استفاده قرار میگیرند. البته این را نیز باید بگویم که به طور کلی این روش ها نباید دائما مورد استفاده قرار بگیرند. زیرا باعث می شوند که ذهن از هدایت کردن خود به سمت روابط منطقی افکار که باید بر حس جهتی صحیح و منطقی ارائه شود جلوگیری کرده و شخص به محملگویی و مسه عادت کند. مثلا به شخص برای به خاطر سپردن نام استان ها یا بخشها توصیه می شود که از جملات کمابیش عجیب و غیر معمول استفاده کند. در برخی موارد اگر حافظه شنوایی قوی باشد می توان از فرمولهای ریاضی که به صورت شعر درآمده باشد استفاده کرد ولی مجددا تکرار میکنم که این فرمولها به صورت دائم قابل استفاده نیستند علاوه بر آن سوای آنکه آنها ذهن را به محملات و یاوهگویی عادت میدهند خود نیز نسبتا خسته کننده هستند زیرا نیاز به تلاش خاصی دارند در حالی که گاهی اوقات انجام این تلاش برای به خاطر آوردن مسائل حفظ شده کافی است و سرانجام ضمن اینکه باعث خطای حسی میشوند متاسفانه این عیب را دارند که سبب میگردند تا نوعی حافظه مکانیکی که متضاد هوش و ذهن است نیز به وجود بیاید. حال این روشها را برای خوانندگان کنجکاو و صرفاً برای آگاهی ایشان مطرح می‌کنم. به هر حال برخی از آنها مثلا سیستم تقویت کننده می‌تواند مفید واقع شود و استفاده گهگاه از آن اشکالی ندارد. به عبارت دیگر از آنها می توان در بازی هایی که از رادیو و تلویزیون پخش می شود و در آنها یک رشته یاداوری ها ضرورت پیدا می کند استفاده کرد. ما این مسائل را تحت عنوان چگونه وانمود کنیم حافظهی العاده داریم تشریح کرده ایم. در اینجا عملی ترین سیستم ها و موثرترین آنها را که عبارت است از سیستم تقویت کننده سیستم تلفظی اعداد، و چند روش دیگر که اهمیت کمتری دارند مورد بررسی قرار می‌دهیم. بخش اول سیستم تقویت کننده روشی است که برای فراگیری یک متن و خصوصاً متون قافیه دار به کار می‌رود و استفاده از آن در میان هنرپیشگان بسیار رایج است. روش مزبور، مثلا هنگامی که شخص می‌خواهد یک یا چندین بیت شعر را حفظ کند شامل متصل کردن کلمه آخر هر بیت به کلمه اول بیت بعدی توسط کلمه دیگر یا یک فرمول کوتاه می شود که زنجیری تا حد امکان مشخص و دقیق را بسازد. بخش دوم، سیستم تلفظ‌های شماره‌گذاری شده. سیستم در مورد تلفظ شماره‌گذاری شده مربوط به آب می می‌شود. که خود وی نتایج واقعا تعجب آوری را با استفاده از آن به دست آورده است. با استفاده از این روش، او به خود میبالید که قدرت حفظ تاریخ تمام وقایه بزرگ جهان، ارتفاع تمام کوها و حتی بلندترین اعداد و مشکلترین فرمولها را دارد. در این زمینه، وی داستان زیر را نقل می کند. بارها برایم اتفاق افتاده بود که فرانسوا آراگو را با نشان دادن اینکه از طریق روش حفظی چه چیزهایی را به خاطر سپرده بودم، متعجب و حتی ناراحت می کردم. بارها اتفاق افتاده بود که وقتی وی مشغول بررسی نامه های اکادمی علوم بود، در محل کارش حضور پیدا می کردم. مثلا هنگامی که برای او اندازه جدیدی از ارتفاعات یکی از کوهای دنیا را میآوردند، اولین کاری که او انجام می‌داد، مقایسه این اندازه با ارتفاعی بود که قبلاً از این کوه در دفتر ثبت شده بود. و معمولا دفتر ثبت زیر حجم زیادی از کتب، بروشور و غیره که روی میزش قرار داشت، ناپدید میشد. پس از آن که مدتی را به دنبال دفتر میگشت آن را یافت. از اون نام کوهی را که مورد نظرش بود سوال می‌کردم. و او مثلاً مونتروز، ونیمال، شنبورازو، مونت سروین یا اورست را نام می برد و من به سرعت ارتفاعات آنها را به ترتیب 4638، 3298، 6110، 4482 و 8882 متر و غیره برای او می‌شمردم. او با خنده تهدید می‌کرد که مرا به عنوان یک جادوگر خواهد سوزاند. یک روز مثل این که بخواهد از من انتقام بگیرد، گفت که شانزده رقم ابتدای نسبت محیط به قطر را می داند. به او گفتم برای شما متاسفم استاد، چون شما اگر ده رقم متوالی از رقم شستم به نیز بخواهید، آنها را برایتان خواهم گفت. آنها عبارتند از چهار، چهار، پنج، نو، دو، سه، سفر، هفت، هشت و یک، در اینجا او تقریباً مرا با عصبانیت متوقف کرد. مسلما او در این مورد حق داشت. همین نویسنده می‌افساید در قرن ما بیش از هر قرن دیگری داده‌های عددی که باید حفظ شوند بی‌وقفه افزایش می‌یابد. بدون روش حفظی فقط اعداد بسیار ناچیزی را می‌توان به خاطر سپرد، در حالی که با این روش می‌توان تعداد بسیار زیادی از ارقام را حفظ کرد. این مسئله گرچه جای بحث دارد، زیرا شاید خیلی هم مفید نباشد که ذهن را با تعداد بیشماری از اعداد اشبا سازیم. با وجود این بیارزش هم نبوده و یکی از دلایلی است که ما تصور میکنیم، گاهی اوقات میتوان روش تلفظی ارقام را مورد استفاده قرار داد. در این سیستم ها ارغام و اعداد را که هیچ گونه معنایی ندارند به حروف معنیدار تبدیل کرده و آنها را در یک جمله قرار می دهیم. هنگامی که این کار به پایان رسید، کافیست جمله را حفظ کنیم، که معمولاً کار ساده است و در زمان خواسته شده، معنای عددی آنها را به ایشان بازگردانیم. جدول زیر که امروزه افراد بسیاری از آن استفاده می کنند، از تحقیقات آب موانو سرچشمه گرفته است. یک با ته یا دال نشان داده می شود. دو با نون نشان داده می شود. سه با میم نشان داده می شود. چهار باره نشان داده می شود؟ پنج بالام نشان داده می شود. شش با ژ یا شین نشان داده می شود. هفت با کاف یا گاف نشان داده می شود. هشت با ف یا واف نشان داده می شود؟ نه با پ یا به نشان داده می شود؟ و صفر با سه یا ز نشان داده می شود. برای استفاده از این روش می توانید مثلا جمعه را به کار ببرید که اعداد از سف تا 9 در آن ذکر شده باشند. بنابراین بایستی با جایگزین کردن کلمات به جای ارقام، جمله ای ساخت و آن را حفظ کرد و سپس در هنگام نیاز با ارقام جایگزین سازید. در اینجا مثالی می زنم تا این موضوع بهتر فهمیده شود. فرض کنیم که میخواهیم رقم 1219 را به خاطر بسپاریم. اگر هر یک از این اعداد را با حرف مربوط به آن جایگزین سازیم، حروف ت، نون، دال و ب به دست خواهد آمد. البته این تبدیل به تنهایی هیچ گونه معنایی نداشته و به خاطر سپردن این حروف مشکل تر از حفظ کردن رقم 1219 است. ولی کار به اینجا ختم نمی شود. اکنون برای ساختن یک جمله، باید کلماتی را بیابید که این حروف در ابتدای آنها قرار گرفته باشند، و بتوان با گذاشتن آن کلمات در کنار یکدیگر جمله ای را به وجود آورد مثلا تو نباید دروغ بگویی مسلما بعدا می توانید با بخاطر آوردن این جمله مجدداً همین عدد را بیابید علاوه بر این شکل از کلمات نیز به تنهایی می توان برای ارائه ارغام استفاده کرد برای این کار باید اعداد را به حروف تبدیل کرده و آنها را به صورت پی در پی یا با فاصله به صورت کلماتی دارای مفهوم درآورید در فواصل آنها از حروف دیگر که نشان دهنده اعداد نیستند استفاده کنید در این زمینه به خاطر داشتن چند نکته ضروری است 1. فقط از حروفی که نامبرده شد برای ارائه ارقام استفاده می شود دو. روش تلفظی ارقام را می توان برای اعداد موجود در جغرافیا تاریخ فیزیک و مسائل مختلف دیگری که باید حفظ شوند بکار برد اما بهتر است متذکر شوم که بهترین فرمول یا دقیقتر بگویم آنهایی که راحت تر از بقیه مورد استفاده قرار میگیرند گروهی هستند که توسط خود شما تر شده باشند. بخش سوم کاربرد این روش در وقایع تاریخی در این رابطه می توان رقم هزار را در صورتی که آن واقعه پس از هزاره میلادی اتفاق افتاده است را حذف کرد تا رقم ساده تر شود. بخش چهارم سایر روش ها در این قسمت چند روش را که با موارد قبلی متفاوت است برایتان تشریح می کنم. برای به یاد آوردن نام اشخاص میتوان نامشان را با یک اندیشه و یا یک تصویر خیلی عجیب از او ارتباط داد. مثال: آقای محمدی به گل بسیار علاقهمند است. آقای شاهسواری از پرتغال بدش میآید و غیره. روش دیگری را که شامل درست کردن جملات ساده‌ای که ابتدای کلمات آنها از حرف اول یا سیلاب اول کلمه‌ای که باید فرا گرفته شود تشکیل شده، میتوان به کار برد. از این روش نیز میتوان برای به خاطر سپردن اسامی آناتومی و سایر علوم استفاده کرد. مثالهای مختلفی را در این زمینه میتوان یافت، ولی تصور میکنم این کار بیهوده باشد. زیرا خواننده خود باید در هر مورد خاص جمله یا کلماتی را به کار ببرد.